الله <سؤال> الرحمن الحمد لله رب العالمين الله علیه رسول الله و اللهم و اون تعلیق حائز و جنوب البته من باز مراجعه کردم تو یه مقداری شوافیدی فیدار شده اما احتیاج به بحث بیشتری داره این تفصیل ما بین جنوب و حائز رو فقط در همین تکموله علمه دیش بله یه البته دیگه هم داره البته جنوب توش نداره فقط حائز که میگه اگه میخواد یا علاقا تحویز و علاقا حائز میگه می‌جعلو في حساب حديد یه چیزی بده یه قدیمه که پوسته اونجا در یک زره آهنی یک قشره حدید به اصطلاح یک جور آهنی بود مراد زره تصل خودش نه یه دیه بعضی اختار مثلا از شلزاد مسی یه جور ازش لوله درست می‌کنن قصبه مثلا معنی لوله بوده این رو به حساب بچگان می‌شردن تو اون لوله می‌گوشن آویزون می‌کردن قشره حدیدی اما حالا فتوا دقیقاً باشه تا اونجایی که الان اجمالاً دیدم در مثل جواهر و جواهر و و عده از کتب این فتوا رو که اینجوری هنوز بین اصحاب دقیقاً به این ترتیب آمده این به این ترتیب که یجوز و دلجوز سر قاعده ها در بحث فقهی کتاب های فقهی ماهس قلبه آثار جناب رحیل و مس هم مس اگه جوانی جایی اختلاف دادن اونجا کردن اما این اثر رو نیاورده خود این مطلب رو اجماعان به خود شرایع هم آمده جواهر هم آورده، بلکه عجیبه این روایت که بولهیرم جواهر نمیوازه متعرض این مطلب نشه. یعنی این تفصیل که برای جنوب میتونه آویزان بکنه آن رو اما حائز حتما باید توی پوستی چیزی بگذره. این علان توی تبلهیرم آمده. من یه وقتی اگر آقای یادشون باشه در خلال بحث‌های گذشته گاهی گفتم ما در بعد از این موارد نادر داریم از کتاب منسوس که تو شرایط نیمده یکیش مثل اینجا. این هم علیتشی مونده که این کتاب حسن در اختیار ساب شرایط نبوده تبوله همه و الا این تفصیل قائل بین جنوب و بین حائز. این. اما حالا من نگاه هم خیلی از مسادرم رو. اما یک یکی اطمینانی نرسیدم اینا متعرض این تبوله همه هم توی هجوهی که توی, ت... توی وسایل هم چند بابیم با متعدد هم در خیز هم در وضو هم در جنابت چند بابی که من مراجعه کردم باز هم نشون اباظه تبول عین رو نیاورد حساب مسائل الله هست معلوم میشه که هنوز هم ما در فقه تفریعمون بعضی در حساب فروه در فقه مخصوصه بعضی از فروه هست که در روایات هست اما در اینها نیامده حدیث شماره 20 این یکی از به اصطلاح رقیه ها و یکی از ما ایرانیم دیگه چه دعاهایی بوده که خونده می شده بله و از این صلوات خوندیم صلوات رو یه هفته پیش داشتم پیش خوندیم از کتاب ضامن اسلام فعلا ما مصدر نداریم از امام باقر کرده در ضامن اسلام که می‌فرمازه اگر دردی بود دست درون در, در, در بزاد فزع یدک علی و قول که بسم الله ارغیک این اثر سیش اردی که به معنی روایتی یعنی به اسطلاح تو مانع از مرض میشه مرضی تو بین بینید بسم الله اله و اله حد و اله حدید اله آخیت بیان و ها حد تکرار حدیث شمایه بیست و یک ابو عطا ارز کردم خیلوزا عرض کردم ابو عطا محلف کتابه این در کتب قدیم نهست بوده گاره وقت اول حدیث اسم محلف میورده در کتاب صدی و زیاده قال محمد بن محمد ابن علیه نوسی کتابه این بوده. توی کافی هم حتی اول کافی هست. حدس محمد را نیاک و ابو جابر محمد را دعو کنیم. بعضی خلاک که مثلا یک کلینیک جنب داریم که این آه حدیث بوده. نه، راست می‌شن بوده. ابو عطاب از کنه تا تو حسین کنیش ابو الله عبدالله کنیش ابو عطابه حسین و عبدالله دو فرزند. آل حدثنی الخزار اگر درست باشه ما چون این اسما میدونید شما خراز ممکنه باشه خزار ممکنه باشه جزار ممکنه باشه هم چند میشه قراحت کرد چون کلن این آهار نمیشنسیم بینم به همی که در کتاب موجوده میگیم آل حدثنی خزاله عن عبان این عبی حمزه سومالی عن الباغر علیه السلام برا بله. این لولا خود کتاب انصافا سند معتبر معتردیز قابل اعتماد. قال قال امیر المنی علیه السلام من اصابه و علمان فی جسدیهی فلیعویق نفسه این اینم یکی دیگه اینم من حینی خونم برای انها یعنی امکان داره که انسان نمیخواد برای تعویز و برای روغیه یا استرقا کسی دیگری برش انجام بده خودش هم به خودش میتونه بکنه عمر یک عوضی مسافه دستش رو جای درد بگذاره ولی یک رو تارد قفله انحاء مختلف یکی چه اینه که خود انسان شنیدم که مثلا از برز انسان انصافه هم بد نبوده برزی ها تجربه شده که کسایی که مرز دست چپش رو سیده بگذارم با دست راستشون بشمارن هفتاد با سوره هم بخونم به خودشون بستن با قولان فوت بخونم اینم اینجا اصلش هست من صبه و المانفی جزده ولی یا ع نفسه خودش را خودش تعویز میکنه ولی یقل اعوذ به عزت الله و قدرته على عاشاء و ع و نفسی به جدبار سما او ع رو به نفسیر و مع اسمه دا و ای رو نفسی به زلی اسم و براکشون و شفا به نه اضاقالدالت لمغر و علمان و آدا ممسفر حقلی غد با اینکه این کتاب کلارا از که روشن نداره دعاش خیلی شنگی یعنی بازم ابهام نداره یعنی هیچ عبارت رکیکی که نیست خب این هم یک نحوه دیگه از به اصطلاح از این این تعویز رو به دعاست نه به قرآن که این یک دو تعویز انسان به خودش و اونم به این نه که درس بگذار و بخونه یه مفاقی مثلا توف بزن و درستش بگذاری یا مثلا بکش یا به دمه دمی درم نمی هم یک جور از روایاتی که در این جدیشون داره حدیث شماره 22 علی ابن ابراهیم واسطی این روما نمی شنسیم قال حدیث محبوب الان محبوب رو هم اینجا شنسیم احتمال می ابن محبوب باشه در شام در من اون روزم از کردم احتمال میدم اول محبوب باشه محبوب محبوب محبوب خبیشون که از اجلاست ان محمد بن سلیمان الارعودی ایشون هم که درنام واضح نیست یک محمد بن سلیمان تبایی داریم که ضعیفه ان ابل جارود ابل جارود یاد ابن منزم دوز اصحاب امام باقیر بوده زمان امام سادر هم تا قیام زید با امام بود بعد از زمان قیام زید کورم بله. و مادرزاد رو من و از امام صادق برگشت به زیدی شد و وقفاتش هم حدود زمان موسط جعفره ایشون یه مختصر از امام صادق دارن همون هواه بعد زیدی میشن و اصولا اون جارودی که از رأسای زیدی است یعنی مذهب داره همین زیدیه که الان دقیقه من هستن اینا مؤزمشون جاروبی هم تو جون صالحی هم دارن به خودشون اونا اطباع حسن صالح صوری هستند اما مقزمی کران هستند زیدی جاروی هستند اطباع ایشون هستند اسحاق ابی اسحاق جزو شاگرد شاگرده شاگر امیر مومنینه جزء توقعینه مرد مولاییس عبدالله هم نعم میشه ایشون هم همدانیه همدان از اشعار معروف یمن بود که ظاهرن بخش مقزمش به اصطلاح شیعه هستن بس نیز از همدان به نام سبیه ما عادتاً مسغل بخونیم اینجا مکبره اشتباه نشه ابو اصحاب سبیهی به سین و با و یا و این و یا سبیه بس رو این در نهر سنت هم خیلی حدیث داره با والاد زیاد داره ابو اصحاب سبیهی خیلی معروف انه به خارسل ایشون هم همگانیه این گیره به نظرم چون این شعر ها همدان همگان مال ایشانه برستان خارسل نبدالله احور. احور یعنی یک چشم این هم حتی گفته شده همدانی هم نیست ایرانی هم در ظاهرا همون همدانی باشه و مرد ملایی هم بوده و غیر از جهات دینی ریاضیات و اینجور چیزا برش بوده. اون کتاب قضايا و سنن و احکام که خیلی گردشنام می‌بریم نجسی یه ایده به ایشان نسبت دادن میگن یعنی مؤلف کتاب اینه ال حارث ابن عبدالله الاعور همدانی که این یاهار همدان شعر نیست این کلام چیزه چرا شعر نظر میخوام این کلامی است که حارث خدمت امام صاحباتی که درخ اینا بر اساس یاهار همدان نثر معنيه مو من, من مؤمن و مناظرم له اینه مرحوم سید همیاری سید ابن اسماعیل همیاری به شعر درو شعر مالی ایشانه مال سید ابن اسماعیل همیاری متن حدیث امیرالمؤمنین به صورت شعر در آمده والله شکر شکوت الی امیرالمؤمن علیه السلام علمن و راجعا اینا غالبا دیگه مال دوران کوفه است یعنی اون 7 سال اخیری که عمیری و در کوفه تشریف داشتن ایشون به خدمت امام نسیده فی جسدیه فقال دشتک و اهدکان فریق و البته در اینجا نداره که دست به زوریانه بسم الله و صلی الله علی رسول الله و آله اعوذ به الله و قدرت على مایشا من شر ما عجل این با اون متن فرم کن اینم خوبه اینم متنش مشکل اون متن قدیل شنکر بود این متن مشکل نداره فی اینهو ازاقال دالت خرفه الله و امه و ازان تعالی البته اینها تعویض یا استرقاء به دعای چون اعرض کردیم یک اطلاقاتی داره که استرقاء جائزه اطلاقاتی داره که استرقاء جائز نیست مقیداتی هم داره مثلا تغییر شده از سرقیت به بل قرآن فلا اینا جزای موارد تغییر استرقاء به دعاست باز حدیث شماره 23 سهل ابن احمد احتمال اینکه که سهر دیباجی باشه خیلی بعیده آله حدیث انا علی ابن نعمان از اجلاس ان ابن سمکان مسکان باشه اشتباه غلط چام شده انا الرحیم قصیر یا عبدالرح این خیلی واضح نیست باید شواهدی با توصیح شده انا ری جفر الباغل از اسلام قام من شکا رأسهو فلیم سحو به نفسه فلیم سحو به این بازی که دیگری غیر از اونا ولی یه قول عوض به الله لذی سکر لهما فت بر و بره و فت سماط الاز و هواس همه آل علیس هر امرات فل نهو یارقان من میخوام اینو از بکنم که معلوم میشه که مزومان اصحاب ما میراثهای دیار زیادی از ایمده در انواع عادیه و انواع شکار امراض اینها داشتن عجیبه که به ما نرسیده خیلی عجیبه این اگر این که بله با این مرده مزولش نبود ما اینا رو نداشتیم خیلی تحجیباوره برای ما تحجیباوره باز در تبوله امه حریض ابن ایوب جورجانی این هم کلن اصلا من اینکه اون من احتمالیم اسمان جهلی باشه اسمان اجواری دویم حریض ابن ایوب جورجانی قال حدثنا محمد ابن عبیده است پیش شما هم همینطوره این باید احمد بن محمد عبیده است محمد عبیده است این بزندیه معروفه صالح حدثني انس علبه سعلبه طلبه بن ميمونه این جزء بزرگان اصحاب سعلبه هم فهی هم راوی بزرگوار هم شاهد قول انذ و من هم اهل زهد و قرع و تنبا و خیلی مرد جیر و قد این سعلبه بن ميمون قدس الله سره مرز فوق العاده بزرگوار است اینجا امر رشته عمر بن يزيد سيغن میشه یاد اصبات رسالتش کرد جعفر جعفرم محمد ابن علی ابن حسین آل شکوت و علیه رجع رأسی و ما اجد و ها و نهارند. البته این استرقاء به قرآن هر حدیثی رو اون نقطه پندیش بعضی هم آمدن گفتن مثلا استرغای به قرآن یا حدیث در اون مرزه هایی که موجوده در نست مثلا. مثلا اینجا گفتن ورجع رأسی و که انصافن الان این چندتا حدیث که خوندیم مطلقه اگر یک جا آمد وجه رأسی این تقیید نمیداره فقال زعیده که و قول بسم الله الذي لا یا ذر رو من اسمی شیخان فیل فی با هوست سمیع عل الالی این تقرار شده اللهم اینی از تجیر رو بکنم از هم محمد و لنفسه صلی الله علیه و علیه روات قشنگی انصافن شبیه همون و عوضه که مسال من عبادت و سالمون توی خنوط روزه اید خیلی شبیه هونه علایه حالا انصافه این شواهد کتاب سنت هم مراد همینه یعنی این روایات با ذرف اصنادش اما انصافا شواهد میدارن به انهو یست کنه که انهو به ازن الله تعالی و حسن توفیره باز دو مرتبه در همین کتاب جناب آقایت بلعمه حدثنا محمد بن جرحل که باز ایشان هم کلا نمیشناسین یه نسخه نوشته نرسی اونم نمیشناسین هر کدوم باشه نمیشناسین قال حدثنا محمد بن يحيى اليرمني این شو واز ما هست توثیقه درستی ندارم تغییر در خط باشه هست قال حدثنا محمد بن سنان سنانی اما خود محمد بن سنان من سنانی باشه آره هر حال محمد بن سنان معروفه دیگه کاملا معروفه و محمد ابن سنانه که از مهمترین و ناشران و مردجان و آثار مفضل ابن عمره این ما مفصل خواهیم بحثا من راست کردیم مفصل متعبیش شدیم سنانیش به نظر اشتباه باشه بله مرحوم سنور یه استاد دارد محمد ابن فلان سنانی از نباه های محمد ابن سنانه یار من تعبیر سنانی رو نشته بودند راجعه به ان این هم از خط غلوب همشون خط غلوب هست این هم از خط غلوب است از کردیم ما تا اونجهی که خبر داریم در میان خط غلوب حالا مراد اون از خط غلوب یعنی ممنوس به ادهیل غلوب که در باشن و انواع غلوب رو بحثی پیش آمد ما هفتش مطلب روشه به خط غلوب دستبردی کردیم یک دو سه 5 پنج شیش هفتش گفتیم که خط قلوب مجموعه ای اینها بوده حالا بعضی هاش بعضی داشتن بعضی هاش دو توش داشتن بعضی هاش داشتن اناوی مختلف نیست خط قلوب نواخ نیست و هر حال در اون مجموعه ای که به خط قلوب در روایات اصحاب ما هست میراس های اصحاب ما در عبارات عبارات اصحاب ما مفرز ولی ابن عمر دیگه از اون بالاتر نداریم اون رهبر و, و آخر و اساس خط قلوب به جناب ایشان به مفضل عمرت کلوبی که درسته اون قلوب انحرافی و کفرون زندره و, و فساد ها اول خطاب که رمز اون بسه بود هن عبی عبدالله صادق عبی که امام باغر باشه از سفنا که امام سجاد باشه عبی که امام حسین باشه عبی مؤمنی عادتا مفضل این طور مصند نقل, نقل نمیکنه کنه اصطلاح هم مصنده عادتا نقل شده کنه یا اون کسی که خواست نسبت کرده قال هادي عوده نظر به هاجر ایل علی و النبی برای اهمیتش رساند و نبی یوسف در سردر داشتن پیغمبر سر هوشوندن قال یا محمد اول صدا که با هادر عوزه و خفث الله و ان یا محمد من امر بهادر عوزه صلی الله و امرات علای وجع یسیبو این, این اطلاع داره خصوص سر شفاه الله به چون صدا دردست که در سر بیدا میشه در سر انسان صدا به شفاه الله به ازنه خیلی روایت منکره انصافا جای دیگه شواهد این رو باید ما نذاریم تر شهویده که عدال موزه لده علم. تشتکی به تقوید بسم الله یعنی انصافا اون احادیس و اینکه کتاب یکیه این سه چهارده اخیرش همه خط قلوبه اصلا مضمون شعبیرش شواهد تاریخی شواهد اهل سنت و شیعه اش خیلی ضعیفه و تقبل بسم الله ربنا الذي في السماوات وقدر ذكره ربنا الذي في السماوات والارض امره نافذ ومازن كما ان رحم او في السما اجعل رحمتك في الارض وقتی متنش با اونا انصافا فرمودونه بله حالا مقصود داره که و ذمه شفاء من شفاء که من رحمت از من رحمتت علی طب سلامتنا و تو بله رخصه امنی اسمحو علاوه انصافا انشاءالت حالا عرض می کنیم یکی از نکاتی که در خط اولو بوده همین بوده خیلی احادیثشون نقی نبوده و احادیث خیلی ضعیف بوده حالا این عدم نقا علتش چی بوده زمینه هاش چی بوده انشاءالت وقت دیگری که فرصت شد من عرض می باز در کتاب تبول ایمه خواتینی قاله حدستان ابن یختین که از اجلاست انا حسان صیفت السند دي زياد سيرده بيشوزه ما اصل من تو زيند است ابن ابي وسير بله قال شكاره لابن عبد الله وجع السرنا فقال اذن فزت يدك على الموز تشكي بقول و انه له حسابنا عزيز لا ياتي اثبات من بين هذه الاطراف المختلفه من حكيما حميد شنو من maksud يعني یعنی ایک دردین اوزه ها یا استرقاه ها به دعا بود این استرقاه به قرآنه فرمون لا یستر بار الا به و دعا این کلی بود این صحره ای جزء جزوه استرقاه و اوزه هایی بود که به قرآن آمده بازم قال ابو عبدال همون تب و رزا و عهد و من المؤمنین المش... مش... شکاتم قط تو فقال به اخلاص نیته و مسح موزه ال الب و نزد من القرآن ماه و شفاون و رحمتون للمؤمنین و لا یزید الله لمنه الا خسار این معروف خیلی این که اینجا هنوز نداره موسی نام کرده. خیلی گذاهده عیات معروف برای شفا همین آیه مواردی است بله. باز در همین کتاب فت بولانه ال ابن محمد است سعیش خدر علاو آن خیز می‌خونه. سه شنت، سلام اون اونم ذاتش خیلی شنه. اما خب شما تلفظ میشه این خزر ابن محمد قال حدثنا الخرازینی بود. اینجا نوشته هوارینی. همون خرازیه. اصل احمد جرازینی باشه، خرازینی هم نباشه. جرازینی از کسانی است که ضعیف تضعیف شده. قال حدثنا فضاله عن ابو ابن عثمان عن ابي حمزه روایت الواقع. بله. که صلاسه شینی که رجعون مل همدان اشتکای امیر مؤمنی و زر در کمر و و بله ان نهوی اشهر الی خوابش نمیبره بیخوابی سوال که علی الموز تشتکی من و ما کان نفس انتموت الا باذن الله ای این های به قران البته این سندش هم مثل بقیه اما خب و وقیل سبه مراز این نهانذر نافیده اتراه خب روشی به خود سوره قبل آثار, آثار عجیبه ای داره خب این جای بحث نیست شاید هم تمسک حضرت سلاطه با سلامه مالی توسل تمسک حضرت به ظاهر سوره قبل سلامون هی حتی آمد در پس تیمون به ذکر سلام این سلامته چون نیکرده نکات بسیار مهمه در شبهار شبه در این است که چجوری شبهای سالم این است که یه تفکری بوده تفکری در امیور صادقین هم بوده بهترین چی اونه که سالم باشه یعنی هیچ نهبه دخیلی درش نباشه یعنی اورشلیم چی نیی که یا بودیارشون بهتر مرد است گویششان اورشلیم اور یعنی شهر شلیم هم سلیم شین در عربی مثل شین در عربیه یعنی شهر سلامت الا منع الله بقلب این سلام ازش یک مفهوم بینی هم هست نه فقط در اسلام هست قبل از اسلام هم مثل حالا جاش بحثش اینجا نیست من جمله در شاد و هم داره سلامیه یکی از خصایص شادره است چطور شهر سلامتی داریم شب سلامت هم داریم سلامیه حتی مثلا الف هست که احتمالاً امام تام ت... یعنی احتمالاً به خاطر این سلامتیه گفتن سوره نهر زلال رو هفت بار بخون حالا میگن اون واژه چیه مراتب سر و فلان به هر حال وقتی این دردها از بین میره اینم به روایت شماره 27 شماره 28 حسن بن صالح محمودی که بعضی نمیشناسید قال حدثنا ابو امر بن شمر به نظرم باید با امر نشه فاصله داشته باشه یکی بعید این ابا حمر بن شنبه غلطی در وصایل امر بن شنبه همین درسته یا امر نشه ایشون هم از ذعفی هاست ایشون متاسفانه باز متهم به خط قلوبه اما در واقع عرض کردم قلوه اینها یه نوع شد قلوه سیاسی یا قلوه علمی یعنی مثلا روایاتشون خیلی دقیق این و هم قلوه و عواردی که مثلا این میر خدا بده نه چیزیو یا قلوب و عملی که مثلا ورثه به توائر بشه ورثه به حرام بشن این نبوده حالا انهای قلوب رو یک وقت دیگه برات صحبت کنم ان جابره نیتیج جوفی ایشون هم متاسفانه متن به خاطر و از کردم قلوب ایشون با طور دیگه ایشون ثابت نیست قلوب ایشان میگه برنگره به تعویل تعویل آیاتشون اینو قلوب میدونن و برنگره به این که ایشون شاید نسبت اول مسیحیانه موده که علناً تو مسجد کوфе مکالمهای اهل بیت رو مطرح کرده، که شاید مسجد ولار شیء میدونن سه، اما علناً سومی آن مکالمه مردوه این اینه که بعضی از بزرگان نمیشن که بعضی از افرادو مثلا چیزی به بغلون نسبت دارن که آقای دشمن این اول دفعه یا ماس اجوان ارسته، یکیش ایشان دیگه اینجا ولار نیستید، ایشون داره که در مسجد کوفه در سال 126 اینطور که تحقیه شده اینشون گفت حدیثن این وسیع شاید مثلا علنم توی مردم وسیع یا اوسیا گفتن برای ما این روی یه نوع قلوب حساب میکرد فقال ناز جن نجابر بوده این دیوانه شده یعنی چی وسیع اوسیا این بلا شاید من این وسیع اوسیا شوزه دومیش ما توضیح هست کردیم این وسیعی و اوسیه ها جز عوائد قفلی این هم به این معنا نیست که مثلا شیعه در کورتا قائل نبودن بودن قصلا قبل از این تاریخ قائل بودن این عمل ای مرکلام علنی تو مسجد جامعه که نماد جمعه اقام میشه و حکومت هم حکومت بنی امیه این شاید درشون صنیل بوده این وسیعی و اوسیه گفته نه اینکه مثلا بعضی اکراز مثلا مثلا مثل مثلا مسئله وسایه زمان امام صادق مطرح شده. مفرح نبوده مثلا. نه این نیست اشتباه علایه حاله از کرد این جابر ابن یزیز جوفی قلوبش قلوب باطل نیست قطعا بلکه جزبه مفاهیم حق ماست چون در اون زمان هنوز رسمن توی مجامع عمومی مفرح نبوده ایشون با شجاعت مطرح کرده به اون تبدیر قلوب دادن علایه برای مرحوم نجاشی راجع به جابر رو می نزید دو ست تا مخلی داره همه شروعه باطله نمیدونم چرا اصلا این برای ما هنوز جانه افتاده که چرا مرحوم نجاشی این حرقای عجیباری راجع به جابر زده هیچ برای ما روشن نیست انصافا خیلی عجیبه از شرم نجاشی به کاملا دور بود که این حرقایشون بزن کاملا دور بود چرا اگر روایت باشه از جابر که اثر داشته باشه این اونجا توضیحات رو ارزی میکنیم بله جابر بن یدی از منجل از آثار خط قلوم تأویی داشته مثلا این آیه راجعه رجعته ای راجعه رجعت انی رومی به دنیز این داره تأویی اصلا ارز کردم من وقتی هم کنم بحثت جلسه ارز کردم در کتاب سهی مسلم خیلی عجیب ها در سهی مسلم در اوائلش که مقدم ماننده همون مقدر رو از جابر بن کنه از یعنی جابر چند شخصه داشته که مسلم باید بیاد ردش بخوته مسلمه بیدونه حجاز در سعیه مسلم در عوائلش در صفحه 27-18 در مدوده بله این همین میاده که جابر می این آیه تحلیل رجعت شده رد میکنه جابر رو به خاطر تحلیل از کردن ما از مرحوم نجاشی این تبع رو نداشتیم یعنی مطالبی رو که یشون نرم کرده باطله نیست که الله مثلا حساملها میخوایم بکنیم درست نیست اصلا مطلب درستی نگفته ایشان به هنوزم نمی‌دونم چرا واقعا هم می‌دونم ما من نجوشیم کسی اضافه کرده شن نجاشی نه اونی که راضی به جابر نوشته خیلی ایشان خلاف واقع نوشته اصلا درست نیست مطلب ایشان هم محمد در نعلی بن الهوسین مسلم از زمان باقر نگاه میکنه. قائلیا جابر علی تو لبک کردند. از کل درمین آخر سؤال حش. هم بگو سه شواهد قرآن. چون درم مرامدیگی است. به سمت در لغت فارسی آماسنگی. جایی که در درم درم یا بالامیار استفاده هم درم یا آماسنگی. این کلمه مثل کلم میشه. اینو ایران زن نهاد قرآن علاج. جایی که درم تو خواهد موساده. بگه اوقات آیات به مناسبت منخشیت الله و تلکل امثال نغرب و حال ناز رفت و علیه ها سراسن فهیم نهو یستونو به ازن الله تعالی و دوسته از کلم جابر و مخصوصا امر ابن شمر نه جاچه امر ابن شمر هم تزییف کرده راجب به امر ابن شمر یه زعیفه می را هم نیست اما باز هم میگرم اینا ظرفی که داشتن ممکنه زعف میراس علمی شده نه ضعف و اینم یکی از اجایب واقعا مثلا ایشون متهمه به قلوب و تن روی در این بست شرحالش در کتب اهل بیش از شیه هست در شیعه نه این قدر اما این تذکیف نجاشی آمد اما هستم در کامل که خودش اصو متأثره متاسره مفصل شرایط میشه شبان جوافی رو داره این که از اجل روزگار گویا باید باید هر چیزا داستان نمیاره یه نفری از خط قلوه باشه که شیخه عنوان ادیشوش اونجا نام میکنه از موذن اون که در محله یعنی مشهری بوده اون موذن گفت من سی سال سعی کردم قبل از امره مشهریم تو مسجد کو بود هر وقت که تو نشسته در این سی سال یک من بر او سفقت بگیم میگم اینجا یه عجیب ما اگر این عبارت هرمی سنت نمود اصلا از امرو میشونه خبری درشی خیلی چیزه قریبی مردی من فکر میکنم تضعیفش رو همون جانب میراسای علمی باشه و اون هم به جهت مبانی علمی مثلا ممکنه کتاب جابر رو از بازار گرفته مستقیم از جابر نگرفته نه اینکه دروغ گفته اینکه بگه انجابر به نهر رجازه نم بحث اینی بوده فکر یعنی وقتی آدم آهالا که ایشان رو میبینه فکر نمیره کنم ایشان خیلی قابل طعن باشه مگر به همین نقطه فرمی شو... چون وقتی به نحوه جاده بود کار گیر داره غیر از حضیفیست که این شخص زعیفه به اصطلاح آروم زعیفی زعیفون فلحدیثه زعیف یعنی فلحدیث مبانی حدیث شناختی او ضعیفه بله در اونجا عمرم شمر در این سره هست در هر حال روایت از روایات خط قلوبه لیکن انصافا بد نیست شواهد کتابی معیده بعد داره تأخید سکینه و سکینم و تمروها علالورم یه چاهو میگیلی بعضی زودان نه شده که با چاهوه هم کاری میکنش من فعلا یادم نمیده چوی دیگه و تبول بسم الله بسم الله عرقیق من الجد و الحدیث حالا من با این که این روحات میبا کرده بودم به ذهن نیم از اجایب اینه که دعایم الاسلام که هم خوندیم حدیث اول دعایم الاسلام امروز روز خوندیم انه عبیج جعفر محمد بن علي قال ترق الجرح یعنی من العلم و دم و ما تخ... تخافمه و قول بسم الله عرقی بسم الله الکبر معروفه شد کتاب جابره من خیلی عرصی چون این هم از عبی جعفر باخره و تقول بسم الله عربی که البته این یک کرمه هم توش دارو نداره من الجد و الحدید و من امر الود و من حجر المربوط و من ارق آخر و من ورم آخر و من تاان و عبده و من شراب و برده امر به ازن الله تعالی الاخر انصافا احتمال داره که اصل اون و اصل این یکی بوده اینم باجه به این یکی حدیث بعدی که ایشون داره حلی ابن اصحاق البسری بازم که بلعیمه که نمیشناسیم زکری ابن آدم مقری بی این عنوان نمیشناسیم اما زکری ابن آدم عشقری قومی که معروفه که این شیخانم هست بی این عنوان خب خیلی معروفه و کان یخدم و رضا خراسان آیا زکری ابن آدم خراسان که مرحظه دو اینم الان تو ذهن هم نیست قال سمعت و رضا یبول بله یا, یا ز... قلت و قال على جميع الالعال يا منزل الشفاء و ملح بداء انزل على وجعي الشفاء انك تعافا باذن الله تعالى این مضمون این مضمون خیلی نزدیک به اون مثلی که سننیا تو از رسول الله بر یا مذهب بداء و مذهب البس خیلی نزدیک اون این احتمال ما ذکر کردیم چون حضرت رضا سلام الله در نبین شخصیتی بودن این احتمال هست که و لظام از حضرت مصند یاد نعقل شده احتمال هست که حضرت صلی الله صلی اللہ علیه بعضی از چیزهایی که معروف بوده بین اونها به معنای به اصطلاق اونها بوده حضرت نعقل کردن از این یکیش اینه این یک شباهت با متن اهل سنت داره باز محمد بن حامد و محمد بن خالد عدسه من خلف بن احمد خالد العبسي قال علمنه علي بن موسا هذه الأوزب و قال علمها اخوان کنار مؤمنین آیه نفسي بر بالعزو رب السمو و يز نفسي باللذي يشبه روات خودمونن. بله اون جامدی است که عزوات خودمون. اما اون یه که اولش یک مقداری شبیه بود که میاد. بله. اون وقت در اینجوری دوستی چه دیدم آورده که بحثش، یاش الان بحثش اینجا نیست یکی باز از کتاب قربالستان در مرحوم همیاری با همون سهندگی تالا کندیم قال،, قال رسول الله و قیله و یا رسول الله رقن ها این قبایت دلازه بر جواز میکنه آیا با رقیه میشه استشوا کرد؟ حل ترود دون قدر الله آیا اینها از قدر الهی رد میکنن؟ هزن میتونه خودشان هم جزا قدر الله و انها من قدر الله یعنی خداوند در داره الیت اینا هم قرار داده همچنان که مرض الال خاص خودش داره، این استرقا هم یکی از الال اونه چون میدونید که من شاید توی این بحثان گفتم روایت معروفی از پیهن بر اکرم الله الذي انزل دا انزارت نبا الله که خب شاید چنده مستید مناشی این, این که هر مرضی که هست خداوند برای او یک دوایی قرار داره ما حقیقی نهر سنت هم دارن چه به ما اونا میگن نه معنای حدیث این نیست که برای هر مرضی یک دوایی هست معنای حیره حدیث اینه که شما اگر مرضی رو میبینی خدا فقط اون مرض رو میفرسته اون عوامل ظاهری تأثیر نداره داره اما تأثیر اساسی یعنی همیشه هر مرضی که در انسان میاد غیر از جهات ظاهری فرضون میکروب توش داره ویروس داره باکتری داره و فلان داره فرضون سرما خورده هوا سرده فضا چی بوده غیر از این جهات ظاهری یک نکته واقعی داره که غیر از الله کسی از اون خبر نمونه این الله به معنی این است یعنی فقط خداوند متعال خبر از این د... مرض داره و او فرستاده و او هم فقط دوام می‌کنه دقیق میکنیم گاهی باید میشه پنج تا مریض هم یک شروت میکنیم دو خوب میشن سداشون خوب نمیشه دقیق میکنیم اون حدیث رو اینجور معناب بکنیم الله و رو مرتدار بگیم هلذی رو خبر بگیم خداست اون که الله ها و خداست اون که مرض رو میفرسته و باز هم خود او شفا رو میفرسته دقیق میکنیم نه نمرض رو شام سین کنترل کنیم که بگیم مرض حتما از این ویروس اومده چون ممکنه یه جنبی باشه یک چیزی سرترو کنه 20 نفر باشن 5شون بگن 15 روز بگیرید از اون ویروس نمی‌تونید بگید دوا هم از اون شربتی که خورده یا قرصی که یا سوزنی که زده آمپولی که زده الله نبی انذرت دا انذرت دوا یعنی اینها اشاره به اینه که یک تقدیر رو ایک اندازگیری است طبق اون اندازه ها که به در از خارمه علیه میشه طبق اون اندازه ها خدا قرار میده این سوال میکنه که این روغیه این دعاها این ها اینا ترد من قدر الله اینا تردن نه این هم بزرگ این هم من قدر الله این هم سنی ها دارن این اینها هم در همون دایره علیهت هم وقت این رو ما هم داریم در این رواست کتاب توحید مرحوم سابور از استادش علی بن احمد بن محمد بن عمران جقاق زقاق نمیشه شده آسیاب داشته مثلا تهان بوده یا میخوبیده مثلا دانه های روغنی ناز رو میخوبیده درک کوبیدنه از این آقا نغری میکنه این آقا رو ما نمیشناسیم روز مشایخ مشهور سابور قال حدثنا محمد بن عبدالله کوفی صح کردم چرانا از کردن محمد بن علی عبدالله که مرحوم محمد بن جعفر کوفی این دوزه اجلای اصحاب فوق از جلو قدره و تصور خیلی از اصحاب ما که به اشار عربی نسبت داده میشن و ایرانی یا رومی هستن ایشون واقعا عرب هم هست ایشون از ب... کوفه میاد برای غیل تهران برای نشت دعوت تشکر و کاملا مختیار زندگی کرده. مرمون محمد ابن جهتر کوفی و رابط هم بوده با نواب یه مردالی از بر یه مقداری از توقیاتی که از از نویس سوم و دوگوم به دو مارست یه تراصل همین محمد ابن جعفر عصدی است. و صد و از قومی ها که این هم غالبا مجهول هم که به از قومی ها هم خدمتیشون میرسدن در تهران یکی هم همین علی ابن احمد دقاقه که نمیشنسیم قال حدیثن این موسطن امران نخعی این آقا هم درست نمیشنسیم اما به احتمال بسیار بسیار بسیار بسیار قوی این همراه اموش به رای آمده به احتوانش شیعه بوده؟ حتی گفتشون جزو قولات هم هستند. یعنی اموش موسف نه امران ام... همین سند که الان شما میبینیم محمد نجافر اثری یا موسف نه امران این همین سند زیاد جامعه هست همین سند موسف نه امران البته مشهه این هی در یک رو هست در یه جاست عبدالله یه جاست موسف نه امران از امام حادی زیاده جامعه سندش هم نیمید این موسر نهران نخعی ان امنهی حسین ابن یزید نوفری از سر حسین ابن یزید که از سکونی نهر میکنه ایشون اهل کوفه بوده ایشون هم آمده ری احتمام دیدن اینا برای نشد دعوت داره آمده از اموی خودش هر دو نوفری هست من چند باره عرض کنم ما یکی تا نوفلی داریم در اصحاب امام ساده از ببن اسمایل از ببن اولایی نوفلی اولایی نوفلی اون نوفلی ها پسر اموی امام ساده هست اونا نواهای عبد المطلب ها. یک نوفلی داریم که یمنی از اشیاری همین آهای کوملی کوملی زیاده نخلی اینا اونا نوفلی ها این نوفلی ها غیر از اون نوفلی ها اینا یمنی هستند، اهل یمن هستن و از عشیره نخع هستن. لذا گفته موسی بن عمران نخعی، انا بن حسین بن یزید نوفلی این نوفلی و نخعی یکی از نوفلی بحث نیست از نخع. گیرشته اید از اون. انا علی بن سالم، شاید علی بن سالم احتمالاً مثلا علی نبی حمزه باشه مثلا. انا عبد الله قال سألت عن الرقاة تعتذر به معنی الرقاة چه هست؟ و قال هیه من قدر الان تقدیر صحت روایت احتمال ما دادیم من میخوام در هر روایت یه نقطه بیم احتمال میدیم که اینها روایت عرض باشه اگر تقدیری سهیم کنیم چون از رسولا نرشد بود که خود اون عوضه یا نشره از قدر است میاد این مطلب رو از امام صادق سعال میکنه امام طریق میفرمه ما یه قاعده از کردیم اگر روایت مثلا از رسول الله باشه این اون سوالی باشه موضوع صالح باشه این احتمال رو تعظیم اون خیلی فایده داره چون ارزش اون روایت رو میبره بالا احتمال داره یعنی خیلی مطلب رو از رسول الله نقل کرده میاد برای تاکید از امام صالح سوال میکنه امام هم همین جواب میده ما داریم غیر از داریم به نظر من از اصلا حالا همه فقها شده عرض ندونه همه علمائولو فقیهایی که چه به نظر من دل دل دل دل دل دل دل چون رویات ارض ظابطه شدید مثلا قول چون روزایور و جده که جفر محمد ها روایت خود ما ما خیلی بگیم اینم رویات ارضی اینم یک جورات ارض نمیگه رویان رسول الله حالا شما چی میگه هم ناید ظاهرا این هم ایجرات.